بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دهم ده قواد فقه و سیاست موسسه امام رضا آبان 1400 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سيدنا نبینا عبدالقاسم محمد مفقیت و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما فقيه الله العارفین روحی و ارواح العالمین له الفدا. از سلام مجدد خدمت همه بزرگواران ببینید ما الان لاولای مباحث قبل دو سه پس چارچوب به بحث الانافین قواعد عام شد بعد آمدن قواعد مربوط به عبادات یه جاهایم هم دیدیم که بعضیش ممکنه جایی دیگه هم استفاده بشه مثلا قاعده 25 و بج حرمت به شعائر جنبه عبادی داره ولی میتوانه با زاویه دیده سیاسی هم دیده بشه اگر ما مثلا فرض کنیم قایده میسور در عنوان مثلا 19 رو در نظر بگیریم. ممکنه مشابهش رو هم کسی بیا بازی ها این کار میکنن که مثلا در فرض و مرموان از جمعه سیاست بکار برن خب این یه بحث خاصیه زاویه دیده خاصیه اما قواعدی که مستقیم عنوان سیاسی داشته باشه الان در چارچوب بحثشان مهمه اولا قواعد قضایی رو بردن در ذیل بحث قواعد اصلا تیتر بزرگ زدن عناوین ولایت و سیاست و ما ها از عنوان 73 مرحوم مراقه میر عبدالفتای مراقی شروع فرمودن بعد این بحث زیبایی داره در درس دیگه ما فکرم هم بعضی از عبارات این کتاب رو خدمت دوستان عرض کردیم پس الان اولا این درس اولیا و مولا علیه و بعد ولیت حاکم شریع و بعد ولیت عدول موملین در عنوان 7.3, 7.4, 7.5 بحث میشه بعدش میان سراغ اناوین عو... قضائی خب خود این اهمیت داره ای پس الان این که تیتر مفهوم سیاسات بیا در تیترهای اصلی کتاب این خودش خیلی مهم بغل دست عبادات و معاملات تیتر به عنوان ولایت و سیاسات حتی امور قضایی هم جداش نکرده ها یعنی امور قضایی مربوط به کیه؟ اولیاء ولی و جزه مقوله ولایت و سیاساته یعنی سیاست اینجا معنای عام می پیدا میکنه خب بعض از اون قواعد دیگه هم شما اینجا میتوانید مد نظر بگیرید تطویقاتش رو استفاده کنید به این معنا نیست که قواعد دیگه نمیتوانیم مثلا ما در فضای دیگه سیاسی استفاده بکنیم نه ممکنه در مباحث دیگه لا بله ها سیاسی پیدا کنیم مثلا در دسته آخر که اناوین و شرایط الامل المباشرین بود عنوان بعد از اناوین و ولایت و سیاسات عنوان الانوان الحاد، الحادی و تسعون و یک قاعده در این بحث در این انالکفار و المخالفین مکلفون بلفرو خب این بحث مهمیه عنوان بعدی از و تسعون نوود دو مربوط و از عدالت اموری که در اونها عدالت شرط شده خب شما میخواد ببینید اونجا زاویه بحث چگونه است یک بحث دیگه گفته موضوعاتی که در لسان عدل عقص شدن به عنوان موضوع عنوان از ثالث و تسعون نوود و سه عنوان بعدی از سالت سه فعل المسلم و آخرین مورد بحث غرمت مثلا رضا خب این تنوع هست ولی الان برای بحث ما اینه که ما ببینیم رشد این قواعد چگونه است و سیر بحث رو ما در نظر بگیریم خب خود این که ما ببینیم جایگاه مواس سیاسی کجاست چگونه است آیا در لابلای قواعد آمده؟ خب حالا این بسیار مهمه و نظم کار برحال تاثیر مهمی میتوانه داشته باشه پس ما در این سیر تطور میبینیم بزرگان. قبل از ایشان مرحوم کاش فلقطا هم در یک جایی یه چند مورد محدود با حجم کم رو مثلا جمع فر بودند موارد اینجوری هم داریم مرحوم نراقی هم خب همینطور که ما در کتاب ایشان چه بس حدود چهل مثلا قاعده رو هم اینجور جور فرمودن خب این خیلی خوب هست ما در فضای اهل شیعه میبینیم که بحث های زریفی زیل هر کدام از این قواعد میتوانه مطرح شده باشه و مطرح شده یکی از کتب بسیار مهم ما میبینیم در کتاب خدمتش رو کنم در فضای شیعی کتابهایی که مرحوم شریف کاشانی دارند خدمتش رو کنم مثلا مستقسا مدارک من مستقصا مدارک القواعد ایشوان شاید بگیم بیشترین قاعد سازی رو انجام داده اگه مثلا مرحوم کاش فلقطا یه جاییش و 13 تا به خصوات مختصر رو بردن ایشوان آمدن در مستقصام داره که القواعد آمدن به ترتیب این بحث ها قواعد رو بحث کردند فهرستشونه در نرمستار نگاه به کتاب و تهارم صفحه 3 تا 123 کتاب مثلا آمدن گفت کنیم باب المیاه باب الوضو باب القص به ترتیب هر کدام آمدن قاعده ساختن مثلا در باب المیاه کل ما انتایر الا ما علم انه قذر. قاعده دون کل ما بلغه قد وکر لم و شای همه قاعده قاعده جدا آوردند باب میاه وزو غسل هیزن، و فاس، باب باب نجاسات بیان شد باب طهارت باب صلات همیطور نمونه از می کنم از باب نوافل شروع کردن ال کل نوافل رکعتان به تسلیمتن الا ما نام، باب الاوقات لا یسر شیء من الصلاوات قبل وقت الا ما یستسنا. خیلی قشنگ جمع جور دستبندی لطیفی فرمودند بعد از کتاب سلات زکات و خمس کتاب الصوم کتاب الحج و العمره کتاب الجهاد صفحه 264 بعدم کتاب امر معروف صفحه 272 و 800 کتاب الجهاد خب اینم بعد اسما تیتراش هم مرور کنیم الاولى الخير كله في صيف و تحت ظل الصيف ولا يقيم الناس الا الصيف و لا یقیمون ناسه الا سیف و سیوف و مقالی دل جنته و نار که روایت رو اردن رو زیلش ایت. خب بعد گفت از الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائز قاعده دوم قاعده ثوم کتبالله الجهاد علال رجال و نسا و جهاد و رجل بزل و مالهی و نفسی حتی یختر فی سویلالا مثلا اون دومی رو دو پاراگراف دارند یه پاراگراف بزرگ این رو هم محدود یه پاراگراف قاعده چهارم لا جهاده الا به ازن الامام المعصوم این هم یه دو پاراگراف قاعده پنجم اندر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نها ان قتل نسای ول ول ولدان ول ول الحرب یه پاراگراف قاعده ششم لا یم بغیل المسلمین ان یعز رو یا آن یو آزرو ولای آمرو بل آزر ولای یو قاتلو مع لزینه آزرو یا آزارو یه پاراگراف آسیب ها کل اسیر یو خاز ول حربو قائمه تون فانه او یو قتل ایلان یوسان یه پاراگراف آیده هشتم کل آسیرن یو خاز و قد و زعتر حربو آزارها فال امامو فال اگه اسیر درد از اینکه اوزار هر خلاصه, خلاصه آرام شده باشه جنگ و اسیر گرفته بشه فل امام و فیا بلخیار میتوانه این شایه من, من نعلای به ارسال هم و این شایه اخذم این هم و هزا و این شایه از طرقهم اختیارش دسته ولی امره قاعدین نهم از کتاب جهات ليس سال اهل ع ان یت تب او مدیرن و لا یخ لو اسیرند و لای جهه الان جریحن حالا اگر عبات رو درست خوانده باشم عجله با میخوام خدم شو. قاعدین دهم اتعامل اسیر حبان علام من اثر او و این کانه یوراد و قتل هو شاید من القادس باشه یا قدر قدر آمده اینجا فانه فا یمبقی ان یوت بم و یسقی و یفق بهی کافرن کان او غیره یه خط یه روایت رو اشاره فرمودن تو خود روایت هم تازه نیوردن فصل حاضر رواه حفی فلان ان فلان اینو روایت رو نیوردن قاعده یازدهم لا یقتل الرسل ولا رهن فقط اشاره به روایت کردن محتوان هم حتی نیوردن قاعده دوازده ایما عبدن خرج علینا قبل مولا فهو و حور و ایما عبدن خرج علینا بعد مولا فهوه عبد قاعده سیزده جرت سنه انلا یو خز الجز من المعتوف و لا من المغلوب علیه اشاره به روایت کردن یه پاراگراف وله حالا متن روایت هم شاید نیابرده باشن قایده چارده یه خط و نیم اشاره به روایت لا جزیت علل عبد قاعده پونزن لا تقدیر افل جزیم این متن اینا رو که میخوایم عرض میکنم میخوایم اونس بگیرید با شاکله این تی بحثا هم سعی میشه که برای روایا برای قواعد بعضیش بیش. یه عبارت کوته فشار باشه، بعضیش هم حالا ممکن حالت اسم باشه و بعضیش هم طولانی تر. ولی معمولاً در قاعده سازی بعد تیترا کوتاه و سبک کار اینجا خیلی کوتاه. قواعدیه شونده این قبل الجزی من اهل الزمّا. هفده لا تر به بدل هجر و لا هجره تا به دل فت این یه قاعده يه. دو قاعده خیلی مهمه مشهوره قاعده هجره اذا دخل اللص المحارب فقط حکم و اصابه کف فدمهوفی اونقی دو سارق محارب آمد شما میتونه بکشیش نوزده لراجل لر سحمون وللفارس سحمان فصل و حاض و مشهور فی تسیم تسیم فه. 20 کل ارزن و کانت فهیل کافه یه جوری لیست کردن قاعده است دیگه قاعده ۲۱ کل ارزن مثلا به چی گفتن فصل هاذا حاض عزم بهمالله خلاففی و ممالا خلاف اخبار و به این ناطقم. قعدده کل ارزن اصلا، اهلها ها تاعا فهیه لحم ولا شاید عل هم سب از ذکات فی حاصله ها یه ختونیم اووردن قاده بی۳ کل ارزان تر که اهله ها اماارت تسلیم و یا عمر و علیه تسخوها حال اربابها هاقاعدده بی چهار کل عرض مواتین سب علیها سابقون فوق بها، و احیاها ها و حق به ها و این الله مال کن معروف هم فعله خاتمه فیلم مراابطه فیلم در مراابطه هم چه چند تا قاعده خب اگر پس نمونه و الگوی کار این دست شما آمد در این مراابطه هم سه قاعده آوردن ايه خیر، خير ان الخير ذا كلال كل يوم دوم ایام و اكثره و اكثره 40 يوما فاذا كان جهاد اي 40 روز بشه دیگه این میره ذیل عنوان جهاد دیگه رباط نیست از سالس ار رباطو و فیه ها از منه و انتظار و بعد از بعد میره کتاب امر معروف خب اینم اینجا فیه قواه دون همینطور بحث میکنه هفته میاره بعد خاتمه هم داره خب اینها هم بحث مفیده به هر حال الگوی کار اینجا هستش خب این هم این مستعاض مدارک یک کتابگان دارن الان اسمش باید درم توی افراد یک لحظه یک سالواتی دوستان مارحمت فرمایند اللهم خب صلّا و این رو هم حالا فعلاً الان اسمش کتاب چون اسمش سنگینه فراموش میشم فراموش کردم کتابشون رو خب پس یه کتاب دیگه همیشان دارن باز همین تفصیل رو داره ایشون سعی کردن قاعده سازی بکنن به تفصیل خب در میان کتاب متاخر هم حال بعضی از این باشه در ادوار و صدای اخیر هم حال بعض از این کتاب حالت کتاب درسی پیدا کرده ولی محدود فراز و فرودی داره که طبیعتن تحت تأثیر شرایط و اون فضای آموزشی و پرورشی و اینها به هر حال قرار گرفته الان هم یه مقداری توسعه قواعد پررنگ هست خب می‌بینید کتابایی در نمایشگاهی که این چند روز در مرکز حوزه بود دیدم آیت الله مظاهری بحث قواعدی دارن حضرت آیتالله مکارم از دهه چهل اوایل دهه چهل یه بحث قواعدی داشتن که در دو جهت عرضه ده سال طول کشیده قواعد رو کردند کردن آیتالله فازل لنکرانی به نظرم قواعدی دارن مرحوم بجنوردی خدمتش رو ارز کنم قواعدشون اگر که در هفت جلد حالا بعضی موارد دیگه من مثلا اگر عرض کنم مثلا شیخ جعفر کبیر که شیخ کاش فلقطا قواعد سه تهشر که اشاره کردم این رو بد نیست از قواعد لا سبیل علال محسن فی تزمین ما علای همین از زمان مع عدم الهسان قاعده دوم کل معخوزن به مال محترم مزمون همتون میان یه جایی مثلا یخوست الحکام من احکام امور کسیرن تجمه و حد دخول تحت ولیت الامام قاعده هشت قبلش مثلا المسلمون هم المسلمون هست و اینها قاعده هشت که کوتاه هست صفحه بیس اینجا آمدن بحث یه جور بحث ولایت فقیه رو هم مطرح فرمودن ولی مختصره مثلا این بوده صفحه. خوب یه اشارات کلی دارن علتی رسدش هم یه نقطه چینای گذاشته شده اتبالا چند کلمه حذف شده قاعده نو یوتی فعل و نای فعل منوبعن پس قواعد پس سیاسیش کلام قاعده بود قاعده 8 از این قواعد 30 بعد حالا بحثای دیگم داره محدود دیگه چند قاعده به محدود wurden که پراکنده است قاعده اذن یکی با خام چهار دو تا آخر 16 مثلا ممكن اذن شما این موقع استفاده سیاسی بکنید یا مثلا قاعده 37 سحرج قاعده 12 لا اما اونی که مستقیم قایده 11 بحث صلح در حقوق و اعیان و منافع اونهاست، اما اونی که مستقیم به کار ما در فقه و سیاسه هشت که خیلی کوتاه به فرمودن این ال... اصول الاصلی و قواعد شرعی هم بد نیست اشاره بکنیم خدمت شما ارز کنم اگر اشتباه گفته محومه عبدالله ابن محمد الرزا الحسینی حالا لیست توضیحاتش برمانه میام مثلا قواعد آمده مبادی لغوی رو جدا کرده مبادی احکامی جدا تحصیلی ادله شرع ابواب ادله شرعیه خب بعد اینطور کتاب خال لحاظ بشه بعضی کم و بیش به هر حال دارن کتاب آقای بوجنوردی هم حالا من نرم‌سارم یقدرم دست الان سنگینه خوب نمیاره حدوثش است 63 تا 68 تا به نظرم قاعده داره نکته اساسی در این کتب اینه که به هر حال اه، تنوع اه، چارچوب هست خب این کتاب معخص شناسی رو حتما ملاحظه بفرمه در مفضار فقه اصول که ما داریم جامعه فقه اهل بیت این کتاب معخص شناسی کتاب خوبیه ولی چاپ دیگه هم ما از این داریم که بعد از اینه و هم در واقع کار نمای زنی و آدرستهیه ولی توسعه پیدا کرده و مباحثه دیگه هم درش آمده که کتاب های متعدد و ذکر لیست قواعد هم در اونها آمده ولی خب باز خیلی ناقص طبیعتا اینقدر توسته است در فضای اهل سنت اونها هم اگر ما برگردیم یک اشارات مختصری داشته باشیم در فضای اهل سنت هم کتاب های زیادی هست با عناوین مختلف اشباه و نظاهرین ها یک مرحله تدوین خب مرحله پیدایشش طبیعتاً بلا به لابلای صحبتهای اهل سنت و یه جوری بحث استقراح و قیاس و عشباه و نظاره اینا برمی خب یه جایم از روایات پیانبرگرام استفاده می کنن ممکن وزشان از اهل بیت استفاده کرده باشن اما در مرحل تدوین یکی از اولین،, حالا اولین کسی که وزرزه کردن ابو تاهر و باس حنفی ابو تاهر و باز هنفی متوفی سی و چهل من در تاریخ درس تاریخ علم و که همین نیم سال ارائه می کنم با این نگاهی یه قسمت های دیگه این به تأثیر داره در بحث روش قاعده سازی من یه مقداری دارم روش ببخشت اه روش اه یه چهارچوب دهی نگاه کلان به اهل سنت و مکتب شناسی اونها اهمیت داره غیر از این که میگیم حالا یکی هنفیه یکی بحثش مثلا مالکیه یکی مذهب دیگه خود مثلا سیر کتب اصول در این میان برای این بحث هم طبیعتا ما نیازدن به یک سیر تاریخی اگر یه مقدار روی کردهای اصولی معلوم بشه در به طور کلیم ما اونجا در بحث اصول یه سه چهار تا روی کرد رو از کردیم اول روی کرد متکلمان یا در واقع شافعیانه که اصول رو یه جور مقدم بر فقی دانستند و اول اصول تاسیس میکنن بعد از دل اون فقه در میاب فقه سازی مربوط به مرحله بعده اما روی کرده هنابله یا به اصطلاح فقها ها این هنابله به خودشون میگن فقه به دیگران نمیگن چون که مثلا متکلم بودن گراش و بیشتر خیلی از این ها هم مثل غزالی و جوینی و اینها ها گراش های کلامی دارن میگن متکلمین یا هنابله و اونها میگن متکلم ولی به خودشون میگن چی فقی یه انحصارگرایی گرایی در اسم گذاری هم دارن بعد در فضای کنونیم هم برال وحابیت هم به خودشون میگن اهل سنت ولی به دیگر مذاهی به سنی هم نمیگن چه برسه به شیعه یا چه برسه به متصوفه خب بعد قاید از تقسیم رایج برداد چنگانه مذهبی یه مقداری روی کرد فقه و اصولیشون باید دستمون باشه این حنابله یا به قول خودشون فقه ها اینها روی کردشون فقهیه یعنی اصولشون هم از دل فقه در می خب تو بحث قواعد هم باید تأثیر این رو ببینیم این دو روی کرد رو خب قرن ایشان ابو طایر و بازهنوی متوفی سی سد و چهل 17 قاعده درست میکنه بعد میامده بیرون مردم که میامدن قواعده تکرار میکرده بعد ابو سعید حروی شافعی مخفیانه در مسجد حاضر میشه این قواعد رو که تکرار میکنه یاد میگیره بعد خلاصه از مسجد اون رو خلاصه با میکنه اون ابو تاهر متوجه میشه میزنتش از مسجد خارجش میکنه بعدش دیگه قواعد رو تکرار نمیکنه خب این قواعد متعدده بعض از چند تا از این قواعد مشهور الامورو به مقاصد ها الیقین لا یزول و شک المشقه تجلب و تیسیر از زررهای و زال الادم و حکماتون دموند این زرر خیلی قواعد چندین قواد اصلی و فرعی داریم خب از این قواد در حال شکل میگیره و سعیم میکنن تو فضای اهل سنت که به فضای شیعه از اینها رسیده میگداری عبارات کوتاه جمله قشنگ در بیارن عبالحسن کرخی متوفای 340 هر دو در یه سال فوت میکنن ایشان هم یه سری قواعد رو نقل میکنه مشهور به اصول کرخی که سی و هفته قاعده درش آمده مذهب حنفی این مقداری گوی سبقت رو رو در قرن هفتم هشتوم هم میگن قرون تلایی تدوین قواعد خیلی میدن سراغ اینها و از جمله محمد ابن ابراهیم ابی جرمی سحلکی متوفی شیستد و سیزده کتاب القواهد فی فروه شافعیه رو منیسه مورد دیگه که اشاره کردم از ابن عبدالسلام 660 قواهد الحکام فی مسائل الانام این رو من مدت طولانی برای بعضی از دوستان متنش رو مرور مرور کردیم و نقد و بررسی می‌کردیم البته چون اون ما سابقه بحث مصلحت فخوالمسلحه این کتاب اهمیت داره و فقه موازنات یعنی فقه اهم و مهم و همطور فکر فقه مقاصد از این زاویه با نگاه شیعی بررسی کردیم با دوستانو نقد و بررسی بنده می‌کردم خدمت دوستان که کتاب دیگر هم داره که فرد دیگه آقای عبالعباس ادریس مشهور به قرافی 684 ببینو هم معاصرند همون آقای محمد ابن ابراهیم ابن جهرمی سهلکی متحفه 613 ازددین ابن عبدالسلام مشهور به الامام العز خیلی کتاب معاصر به این کتابش و بعضی کتاب دیگه ارجاع میده 660 قرافی هم یا قرافی هم 684 فوت کرد کتاب مشهورش فروقه فروغه الفروغ. ابن عربی ابن تیمیه حرانی 100 سال بعد یه مدت بعده یه 30 سال بعد متوفی 728 ابن تیمیه مشهور یه کتابی داره القواعد النورانیه خب این یه مرحله که شروع کردن به تدوین قواعد میویم قرن 13م یه تبولی اتفاق میفته ما ببینید قوائد رو توسط فقه ها داریم شیعه در میان شیع فقه های شیعه ادعای ولایت دارن فقی خودش رو از قبل امام منصوب می دانه. اما ولذا به تبیر جانبستاد مددی اصول فقه ما هم ولاییه اما اهل سنت علماشون برای خودشون ولایت قائل نیستن مگر از قبل حاکم خب حالا خود ده سال پیش یک تحولی که اتفاق افتاد عثمانی خب یک حکومت 500 ساله است اوایل به عنوان خلیفه مطرح نبودند بعدن سلاطین عنوان دومی به عنوان خلافت دارن خلافت هم مفهومش در رقابت با روسیه خلاصه استفاده شد. اونها حکومت خودشون دینی دینی می می‌دونستان و ارتدکس بودن و امپراتور به اونا رأس جامعه مسیحی تلقی می‌شد. اینجا هم خواستن مقابله بکنن، رفتن سراغ مفهوم خلیفه و بعد سابقه تراشی هم کردن که یک جوری خلاصه بگن که ما خلافت رو خ... بعد میگن که ما خریدیم از بازماندگان خلافه قبل و از عباسی. خرید و فروش و معامله بعد حالا کار نداره حدود 200 سال پیش 1200 شاید تا 220 سی اون حوالی عثمانی که خب یک امپراتوری بزرگ اسلامی و ارتباطش با اهل سنت پررنگ ببخشید با فضای اروپا و همسایه است بلکه تو وسط اروپا رفته بخش های مختلف اروپا رو گرفته و حکومت خودش رو برجسته کرده. خب اینجا اینها آمدن حالا در تثثر از فضای اروپای حالا نیم رشد یافته رو به رشد یا خودشون افتت... برال ابتکار به خش دادن به جای اینکه فوقه های مختلف هر کدام آرای داشته باشن اختلاف فتاوا با برجسته بشه آمدن قانون گذار کردن هرچند در فضای اهل سنت در واقع ما الان در همزمان هر کسی رو میگیم فقیه خودش افتا میکنه اگر هم اعلم باشه میشه مرجع تقرید مردم از او تبعیت میکنن فوقش فوقه های متعدد داریم اما اهل سنت اونجا تعدد مذهب چندان نبود در عثمانی هم از ادوار گذشته عمدتا مذهب هنفی حاکمیت په. داده شده بود و رسمیت داده شده بود یه کتابی داریم به اسم آقایی به اسم ترسوسی یا ترتوسی داریم در, در بسمی و هرزگوین که زویر مجموع عثمانیه برنه شاید و دهم کتابی می به اسم تحفت و ترک تحفت و ترک فی ما یجب و انیو ملا بهی فل ملک این کتاب میآ اثبات میکنه که آقا شما بیا فقه بعد فقه حنفی رسمیت پیدا کنه و محور باشه چرا؟ و ترجیح داره چرا؟ چون یکی از استدلال مهمش و باوزه که چند تا مثال اینه که آها این به تعبیر امروزی فقه فقه حکومتیه به چه معنا؟ به این معنا که برای حاکم اختیارات بیشتری قائله در خلاف فقه شافعی مثلا فقه هنفی است که میتوانه خلاص در اختیار حاکم قرار برده چون اختیار او رو وسیع کرده و معمولا فقه هنفی حاکمیت داشته خب اینا میان چه کار میکنن؟ یه کمیسیون ویژه تشکیل میدن از بزرگان بعد میان قوانینی به در مباحث معاملات دیگه عمدتاً حالا بحث عبادات و اینا که کار ندارم در بحث معاملات که به هران محل دعوا قرار میگیره در حکومت داری باید کار بشه و محوریت پیدا کنه میان قانون نویسی میکنن بر اساس مباحث فقیه یه پنج سالم سال شاید طول میکشه کتاب میمیسم به اسم مجلت الاحکام العدلیه در واقع میشه این فتوای معیار شماره گذاری میشه حدود اول کار که 99 قایده فقی بوردن بیشترم تحت تاثیر کتاب اشبام نظر ابن نجیمه و یکی هم خاتمه مجامه الحقائق خادمی این کتاب خیلی کتاب جالبیه 99 تا اول اولش بعد شروع خیلی مختلفی هم درش هست من بعض شهرها رو استفاده کردم کتاب خودشان در نرم افزارم یه شرح خوبی که داریم مرحوم شیخ،, مرحوم شیخ حسین یا عبدالحسین کاش فلغتاست یک شخصیت ای که البته روی کرتهای تقریبی هم داره اخوی ایشان بعد از مرحوم ناینی میشه مرجع خودش هم یه مرجعیتی پیدا میکنه کتاب خاطرات جالبی هم داره به ترجمه شده به اسم بند بند سرگذشتم یه رسمت های به الاسهر و اینم رفته با علمای اونجا هم مراوداتی داشته در جلسات این شرکت کرده بحثی جالبی داره که چاپ انتشارات اطلاعات به اسم بندبند بند, بند سرگذشتم عربیش اقود و حیاتی خوب اشاره می‌کنه ایشان این کتاب خوبی داره که در همین تحریر المجلس در همین نرم هم هست اولش این خوب قواعد دوورده. خب این هم به هر حال یه سری قواعد در الان ادوار اخیرم خیلی کتاب نوشته من مطنع زیادی از کتاب قواعد اهل سنت دارم یه کتاب حالا سعی کردن جامعیت داشته باشه به اسم موسوع قواعد دفقی دست بندیش بر اساس الفباییه اون تو داخل خودش هم خیلی تنوع یه مقدار قرقاتی شده یه جای تکراری زیاد داره یعنی کعنه دوباره انگار خواستند بنویسن تا یه جایی رفته دوباره همونا تکرار شده خب کتاب های زیادی مشاهی اینا تو فرقه های تو مذاهب مختلف انواع قواعد بعضیا بر اساس خدمت شما کنم مذهب نوشتن از دیدگاه یک مذهب بعضیا موارد دیگه خب طبیعتاً این تحریر المجله مرحوم کاشف فرقه طه شیخ حسنم ببینید عبدالحسین یا حسین خیلی کمک می‌کنه اینم مرحوم ملهوی کاشانی هم که عرض کردم خیلی ابدا کرد کتاب دیگهشم غیر از مستقص مدارک بحث تسهیل مدارک که اینم بعد حالا اشاره میکنم خب اجمالا در فضای اهل سنت هم این قواعد سازی ها فراوانه کتاب های خیلی فراوانه علم های ما هم خب زحمات زیاده کشتن. در من میخواستم یه قواعد شیعی هم حالا یه دست ارزو کنم اما بد نیست باز این تصدیل المصال که مدارک مرحومه چیزم یک اشاره دوباره بکنم جان همونه تصدیل المصال که مدارک. این همون کتاب قبلی مستقصام مدارک مدارک مستقصا اسمش خاطی شد خدمه شما مستقصا مدار که روائد اگه اشتباه نکنم این هم بر اساس عبای فقیق تارت، سلات، زکات، خم، سوم، حج ایمان و... ایمان و نزور ادق قضا و شهادات به کتاب البه کتاب... از سید و زبای، اللغتم طلاق از زمان، موا... وسایه و مواریز حدود و قصه هست ببیند جلوتر کتاب القضا رو بررسی میکنه بعد آخر کار دوباره حدود و قصه بعد میده خاتمتون فیه قواعد متفرق هم دوباره قواعد متفرق داره خب این هم کمک خوبی میکنه به حال قواعد رو سعی میکنن تفکیک بکنن در قواعد سیاسی اینجا تذکر بدیم که معمولا پراکنده است مثلا همین تصحیل مدارک خب بحث های خود قضا و اینها این کار مدیریتی حاکمیتیه اما بعضی قوادش خواست داره مثلا اقامت الحدود الامن الهیه الحاکم یا موارد دیگه حتم الاسلام ماکان قبله خب بعض از اینا جنبه قضایی هم داره جنبه حاکمیتی کلان هم میتوانه داشته باشه بعضی از قواد جاهای پراکنده است خب حالا کتاب آقای بجنوردی هم که یک کتاب خیلی مشهور علمی طبقه برحال رشد فقه و اصول هست این هم کتاب بسیار مهمیه در هفت جلد اما وضع قواعد مرد نیاز ما پراکنده است تعداد قواعد هم محدوده خب این کتاب محفظ شناسی کمک خیلی خوب میکنه برای شناخت و آشنایی با مجموعه قواعد بلکه اصلا آمده چه کار کرده آمده یک بخشی خود کتب رو معرفی کرده و بعضی یه بخش حال رو در این چاب مثلا شماره یکش کفایت الاسول قایده محسور و لازرر چون آدرس میده دیگه فواید الاسول مثلا قاعده ملازمه بحر الفوائد مثلا چند تا همینطور میره جلو قوائدی که لیست شده بعضی از اینا رو برجسته میکنه مثلا این کتاب مشهور مهمی که داریم بلغت فقی. این که قوائدی رو درش اوورده تا اینا دیگه مورد موردیه دیگه بعضی مثلا این تحریر المجله که ارز کردم خب می اول قوائد عام رو میاره که ایشان هم جلیس کرده در این محخص شناسی از امور به مقاصده ها شروع شده تا مثلا فرض کن بعضی قواید که عامه ولی تطبیقات سیاسی زیادی میتوانه داشته باشه مثلا یوتحمل الزرال خاص لدفع الزرال آم هجده ازا تعار از المفصدتان روی اعظم و ذرم برتکاب اخرفامو که من این موارد رو جای خاصی برش در نظر دارم اینجا آم هم به منزع عام هم عنوان مسال فقه مساله و مفاسد اینا قابل تمثل که شمایه 19 یختار و احوان و شرین 20 در اول مفاسد اولا من جلب المنافع 21 الهاجت و نزل منزلت و ضروره 22 از ضرار و یطفه و به قدر الامکان اینا این چند تا قواعده خیلی مهمه قواعد دیگرم برحال مهم هستن خب این قواعد بعد آمدن تو این کتاب قواعد مختص بی رو چون این کتاب مربوط به بیعه دیگه عمدتاً برای اداره خلاصه جامعه امور معاملات ولی مثلا قاعده نفی سبیلش هم 127 صفحه 92 مثلا آورده در اون کتاب و بعضی موارد جای توسط است پس دوستان باید چکار کنن برای ورود به این قواعد باید این بحث رو به هر حال دنبال بکنن و کتاب قواعد برجسته رو خلاصه مرور بکنن و در کار پژوهش که خیلی بیشتر خدمت شما عرض کنم کتب زیادی داریم حالا من بعضی موارد بحرجه سترش رو میخوام عرض کنم که بعضی کتب چاپ نشودن خب داریم به هر حال اگر اجازه فرمایی در دقایق باقی مانده من یک بحثی رو ارائه بدم که کمک برای احیانا پای نامه نویسی و در پیگیری کارم داشته باشد لا به لا من سعی کردم حالا بعضی قواید فقر بعضی قواید عامه بعضی قواید فقر و داریم از اینکه که کتب جدید هم قافل نشیم از کتوبی مثل مرحوم آقای بجنورده که خیلی جدیه تا برسیم کتاب اطلاع مکارم و اطلاع فازل لنکرانی و بزرگان دیگه یه کتابچه کوچیکی هم برای لیست آشنایی با کتب آقای مصطفی دارند اینم خیلی مهمه و خوبه فشورده است به هر حال ما میتوانیم استفاده بکنیم یا حالا در سیرهای جدید اون قواعد سته که من عرض کردم زهل عنوان الحق المبین آمده مول کاش کاشف القطاع یا کتاب دیگه هم کاشف القطاع اینا هم خودش یه چیزایی می در بیارید اما از این بباعثی که مربوط فقه و است بعضی نکته مهم اینه که بعضیش در واقع از این منظر باید پیگیری بشه که خدمه از کنم تطبیقاته قواعد عام و شامله در اصول ما میتوانیم در کل فقه داشته, فق داشته باشیم در فقه و سیاست داشته باشیم این ازاوی بحثه قواعد عام از لا رو و گرفته تا مثلا تسامح و سایر موارد اونجایی که قابل تطبیقه خود ولایت اینا هم میتونه باشه یک کتابی هم در نظر داشتم خدمه شما عرض کنم کتابی که زیر منش با آقای تسخیری منحوم آقای تسخیری حالا یا تنهایی یا با کمک که بعضی بزرگ بارا مثل آجای نعمانی که از شاگردان شهی شاید سر بودن اینا تطویم کردن در دوسته جلد نکته جالبش اینه که یکی دوسته از قواعد مهم فقه و ولایت و اینا رو جز قواعد عامه حساب کردند. بعضی قواعد فقه و, و هم یا با تطبیقات سیاسی در جاهای مختلف اووردن حالا یک پیشنهادیم ما میتوانیم بکنیم خدمت دوستان که اگر خواستن قواعد رو پیگیری بکنن به عنوان پایان نامه کمکی باشه و اون که حالا ما طبیعتاً در درسمون بعضی موارد رو محدود رو میشه بررسی کنیم همه رو کنیم نمیتوانیم اما دستوندی مناسب هست من چند دسته میکنم با بحث هایی که خدمت جناب استاد رشاد داشتیم یک سری قوائد میتوانه در واقع قوائد مربوط به قبل از در واقع شکلگیری حکومت حساب کنیم یا بگیم قوائد متعلق به سیاست های حکومتی یا پیشا حکومتی می‌گیم قواعد سیاسی پیش حکومت حالا ممکنه یه جای کشوری حکومت داشته باشیم، در یه جای حکومت نداشته باشیم. ما می‌خوایم بگیم یعنی منوط به بحث داری نیست. یه پایان‌نامه می‌تونه قبل از این اصلا ناظر به حتی چند جل یه تفصیل پیدا کنه. ناظر به تطبیق قواعد بر مباحث فقه و سیاسه. قواعد شامله یا قواعد عام و مشترک کل فق در فقه سیاسه داره. تطبیقاتی داره بعض دوستان می توانند این کار رو کنند خیلی فضاهای مختلف معمولا اینجوریه مثلا میگن قواعد پزشکی، واقعا قواعد پزشکی بعضی کتاب نیست قواعد خانواده می نیست قواعد اختصاصی خانواده نیست بیشتر بحث تطبیق قواعد غیر خلاص محدود و غیر اختصاصیه قواعد شامله و مشترک و عام و فراگیر رو میان تطبیق میکنن کار خوبی هم هست حالا بعضی پایناما شما در سایت ایرانداکم هم که ببینید پاینامای دانشگاهی رشته حقوق فقه اینها چود خوب میشه پیدا کنید حالا قبلنها تمامت نمیشد استفاده کرد جدیدند یه چند ماه بستن فقط فهرست پایان نام رو میشه ببینید، بی صفحه اول رو میشه ببینید. خب یه سری پایان‌نامه ها می توان داشت، یه سری ها داشت به عنوان قواعد تطبیقات قواعد عام بر مباص فقه و این یک بحث. خب من کتاب آقای ایروانی هم که قواعد فقیه هست خیلی خوبه اون کتاب درسی بعضی موارد رو داره چون که حالت درسی هم داره خوبه. کتاب آقای تسخیری هم خیلی خوبه خب بیایم تو حالا قواعد اختصاصی قواعد اختصاصی حقیقتش اینه که خیلی توصیه پیدا نکرده یه کتابی آقای روح الله شریعتی در دفتر تبلیغات پجوشکاشان نوشتن از یه جاهای خوبه از یه جاهای, از یه جاهای هم حالا نیاز به کار زیاد داره یه دستبندی هم کردن دستبندیش نوشه قواعد, اخت... قواعد فقه سیاسه اما زیل آمدن گفتن قود سیاسی مربوط به سیاست مربوط به حوزه سیاست، قود سیاسی مربوط به حوزه فرهنگ، قود سیاسی مربوط به حوزه مثلا اقتصاد. همینطورید دست بندیشان اینجوری. میشه شما یه دستبندی دیگه بکنید کنیدید مربوط به مثلا تولید قدرت، قواعد بعد مربوط به حفظ قدرت، قواعد مربوط به بست قدرت این یک الگوی یک الگوی دیگه شما می تونید محور رو قدرت نذارید بیاید قواعد مربوط به مثلا بخش های مختلف حکومتی رو در نظر بگیرید یا کارهای مختلف حکومتی یا وضعیت های مختلف خب یک الگویی که الانجا من پیشنهاد میکنم قواعد سیاسی غیر حکومتی و عام به یک معنا در فضای حکومتی مربوط به ساختن امت اسلامی، ساختن جامعه اسلامی این یک دسته دسته دوم قواعد مربوط به ولایت خب دسته این البته میتونه خودش چندین قاعده داره قواعد مربوط به تاسیس حکومت اسلامی ساختار سازیش اهداف حکومت وظائف حکومت یک دسته هم قواعد مربوط به تدابیر آم حکومتی و مساله عالی و آم حکومتی یه دست قواعد توان مربوط به چی باشه؟ سیاست داخلی یه سری قواعد مربوط به سیاست خارجی یعنی اون اگر چون این تقسیم پسندی که من فخو سیاسته رو اینجوری دسته بنده میکنم اول مثلا یک بحث فلسفه یه فقه و سیاسه خب این خودش فقه نیست ناظر به فقه بعد میاییم قوا... مباحث مربوط به سیاست غیرهکومتی یکی هم بحث قواهد مربوط به ولایت مواعث مربوط به ولایت یکی سری مواعث مربوط به تحسیس حکومت اسلامی که شامل میتوانه قانون اساسی و بحث‌ها و تشکیلات سازی و ساختار سازی و اینا باشه اهداف حکومت باشه یک بحثی هم تدابیر عام حکومتی و مساله عام سیاسی اجتماعی یک بحثی هم مربوط به مباحث سیاست داخلی یکی هم مباحث خارجی بنابراین هر کدوم از اینا میتوانه خلصه بشه یک نامه یک پجرویش مستقل ان که دوستان بتوانند چنین گام‌هایی رو بردارند و توسعه مباحث فقهی رو به سهم خود در مرحله دانش طلبی و خلاصه آموزش پی بگیرن و بتواند در مقام پژوهش اینها رو بالو پر بدن حالا هر کدام از این تفاصیلی داره زیل هر کدام میتواند قواعدی ذکر بشه به عنوان نمونه میتواند موارد مختلف رو مورد اشاره قرار بدیم ما هم در درسمون طبیعتاً بعد گزینشی بکنیم خیلی قواعد هست میتوانیم تا لیست مثلاً سد و سی تایی هم لحاظ بکنیم می توانیم از مینا میان اینهای گزینشی بکنیم قواعد مهمتر رو الحمد رب العالمین بسال الله علا سیدنا و نبی نعب القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیم و بقیات الله فلعرزین روح و عرباه العالمین له الفدا